این داستان هنزل و گرتل یکی بود یکی نبود. زیر گنبد آبی آسمون در روزگارای قدیم نزدیک به جنگل بزرگ هیزم شکن پیری زندگی میکرد که دوتا فرزند داشت. یه پسر به نام هنسل و دختری به نام گرتل. اونا فقیر بودن. و وقتی قهدی شد، هیزمشکن دیگه نمیتونست خورد و خوراک روزانشون رو فراهم کنه. یکی از شباه بعد از اینکه بچهها بچه ها خوابیدن، پدر مادر نشستن و درباره مشکلاتشون با هم صحبت کردن. شکن پیر آهی کشید و به همسرش که مادر ناتنی بچه ها بود گفت چه بلایی به سرمون میاد. من دیگه نمیتونم مخارج و خورد و خوراکمونو جور کنم نمیتونم باید چیکار کار کنم نکنه بچه ها از گرسنگی بمیرن همسرش گفت من میدونم باید چیکار کنیم فردا صبح با بچه ها میریم به جنگل وقتی به قسمت انبوه جنگل رسیدیم اونا رو ول میکنیم که دیگه نتونن بیان خونه هیزم موشکن گفت نه من چنین کاری نمیکنم. بچه جای محسومم و چطوری توی جنگل رها کنم؟ توی چشم به هم زدن حیوان وحشی اونارو رو میبلن. مادر ناتنی گفت اگه بچه ها رو تو جنگل رها نکنی چارتایی از گرسنگی میمیریم. بعدم اونقدر راجی کرد تا امان هیزمشکن رو برید. شکن بیچاره تا صبح نخوابید و به بچه های محسومش فکر میکرد. از طرف دیگه بچه ها که با شکم گرسنه خوابیده بودند از فرت گرسنگی خوابشون نمیبرد به حرفهای مادر ناتنی خودشون گوش کردن و شنیدند چی میگفت تفلکی گرتل وقتی داشت حرفشونو میشنید همینجور گریه میکرد و به برادرش میگفت هنسل چه بلایی به سرمون میاد ما باید چیکار کنیم هنسل در گوشش گفت اینقدر ناراحت نباش من میدونم چیکار کنیم بعد از اینکه پدر و مادرشون به خواب رفتن لباس پوشید و رفت بیرون و سنگریزه های جلوی کلبرو رو که زیر نور ماه مثل سکه های نقره میدرخشید جمع کرد و ریخت و جیب شلوارش هنسل پیش خواهرش برگشت و گفت ناراحت نباش آروم خواب خدا یار و یاور ماست صبح که شد نامادری اومد و اونا رو بیدار کرد و گفت بلنش این تنبلای بیخاسی با من به جنگل بیاین تا برای آتیش هیزم جمع کنیم بعدم تکه نان خشک بهشون داد و گفت تا شب همین نونو داری ما دیگه مبادا سر خوردنش دعوا کنین چون دیگه از نون خبری نیست قرار شد گرتل نونا رو بیاره چون هنسل جیبش پر از سنگریزه بود و نمیتونست نونا رو تو جیبش بذاره. مادر ناتنی اونا از راهی بسیار طولانی اونا رو به جنگل برد. در طول راه هنسل هی بر میگشت و کلبشون رو نگاه میکرد. دست آخر مادر ناتنی گفت چرا دائم وای میسی و به عقب نگاه میکنی؟ هنسل گفت ما در هم روی بام نشسته و میدونم داره برای من گریه میکنه. مادرش گفت چه معنی؟ این گربه تو نیست که نور آفتاب صبحگاهی خورده به دودکش و داره بیتابه. در واقع هنسل گربه ندیده بود ولی هر چند قدم وای میساد تا یکی از سنگریزه های سفید داخل جیبش رو در مسیر راه بندازه. تا به جنگل انبوه رسیدن مادر ناتنی گفت خب بچه ها خیلی سرد شده برین هیزم جمع کنین تا براتون آتیش درست کنم. هنسل و گرتل رفتن و شاخه شکسته شکستر اووردن تا زودتر آتیش شله بر بشه مادر ناتنی گفت بچه ها. همینجا بشینین و استراحت کنین تا من دنبال پدرتون برم او داره توی جنگل هیزام میشکنه وقتی کارش تموم شد میایم دنبالتون هنسل و گرتل کنار آتیش نشستن وقتی زوح شد نونا رو درآوردن و خوردن تا زمانی که صدای ضربه های تبر رو میشنیدن فکر میکردن پدرشون همون نزدیکی ها داره هیزام میشکنه ولی در واقع اون صدای هیزم شکستن نبود. صدای شاخه های خشکی بود که از درخت آویزوم شده بود و با صدای باد تکون میخورد. بعد از یه مدتی که کنار آتیش نشستن پلکاشون سنگینی کرد و به خواب رفتن. وقتی از خواب بیدار شدن شب شده بود و برای همین گرتل شروع کرد به گریه کردن. گریه میکرد و میگفت حالا چطوری از شنگل بریم بیرون؟ هنسل بهش دلداری میداد و میگفت نه ترس یکم سب کن. وقتی ماه به وسط آسمون برسه اون وقت میتونیم راه خونه رو پیدا کنیم. طولی نکشید که ماه اومد وسط آسمون. هنسل دست گرتل رو گرفت. سنگ ریزه هایی رو که در طول راه ریخته بود حالا مثل سکه میدرخ راه خونه رو گرفتن و رفتن. صبح که شد به خونه رسیدن مادر ناتنیشون در رو باز کرد و گفت بچه های شیطون تا حالا توی جنگل مونده بودین ما فکر کردیم دیگه بر نمیگردیم. پدر از دیدن اونا خیلی خوشحال شد چون فکر اینکه که بچه ها رو تو جنگل رها بکنن و خیونا برن سراغشون قلبش رو آزرده کرده بود مدتی گذشت و قهدی و خشکسالی دوباره به سراغ مردم اونجا اومد. دوباره شب وقتی بچه ها توی رخت خواب بود. صدای نامادری را شنیدن که می گفت ما هیچ وقت به این بدی نبوده. فقط یک نصف نون داریم. اگر این نصف نونم تموم بشه همه اشق و علاقه ها هم تموم میشه. بچه ها باید برن و گورشون رو گم کنن. باید اونا اونارو یه جای دورتری توی جنگل ببریم که دیگه نتونن راه خونه رو پیدا کنن. به محض اینکه پدر مادر به خواب رفتن، هنسل بلند شد که بره سنگریزه‌های جلوی در رو جمع کنه که متوجه شد در کلبه اوف شده. صبح روز بعد مادر ناتنی اومد و بچه ها رو از تخت خواب بیرون کشید. وقتی اونا لباساشون رو پوشیدن، به هر کدومشون یه تکه نان خیلی کوچیک داد. بعد همگی راه جنگل رو در پیش گرفتن. همونطور که راه می این بار هنسل نونا رو تکه تکه می کرد و مرتب وای می ساد و سرش رو بر می گردون. انگار می خواد کل رو ببین. ولی پنهونی یه تیکه نان می و راه می رفت. مادر ناتنی دوباره گفت هنسل چرا اینقدر وای میسی؟ زود باش عجله کن. هنسل گفت کبوترمو دیدم که روی پشت بوم نشسته و میخواست با من خدافزی کنه زن گفت چه معنی؟ این فقط نور صبحگاهیه که روی دودگش میتابه راهی طولانی رو طی کردن و به وسط جنگل رسیدن این بار هم شاخه ها و هیزم جمع کردند تا مادر ناتنی براشون آتیش روشن کنه مادر ناتنی آتیش روشن کرد و بهشون گفت من میرم پیش پدرتون وقتی کارش تموم شد میام دنبالتون و با هم همگی به خونه برمیگردیم گردیم. زوح شد و چون هنسل نوناش رو تیکه تیکه توی راه انداخته بود، خواهرش تکه نانش رو با اون تقسیم کرد و خوردن و خیلی زود خوابشون برد. وقتی بیدار شدن، هوا تاریک بود. هنسل گفت، سب کن ماه وسط آسمون بیاد، بعد راهی خونه میشین. وقتی ماه وسط آسمون اومد و بلند شدن که تکیه های نان رو پیدا کنن و مسیر خونه رو پیدا کنن دیدن که پرنده ها نون رو خوردن و اثری از آثار نون ها نبود. با این حال هنسل که ترسیده بود گفت گرتل نگران نباش ما بدون تیکه های نون هم میتونیم خونه رو پیدا کنیم. ولی تا صبح دور خودشون چرخیدن. فردا هم تا شب میون درختای جنگل سرگردون بودن و اگر چند تا تمشک پیدا نمیکردن و نمیخوردن، حتما از گرسنگی می مردن. از فرط گرسنگی و خستگی کنار یه درخت دراز کشیدن و خوابشون برد وقتی از خواب بیدار شدن سومین روزی بود که از خونه پدرشون دور شده بودن و هر روز بیشتر به وسط جنگل نزدیک می شدن. نزدیک ظهر بود که پرنده سفیدی رو روی شاخه درختی دیدن که داشت آواز میخون. بایستادن رو به آواز پرنده گوش کردن. وقتی آواز پرنده تموم شد، بال زد و پرید و اونا هم دنبالش میدویدن و با تعجب به خونه ای رسیدن که از نون زنجبیلی درست شده بود. با که که خامه ایم تزین شده بود، پنجره هاشم نون جوی شیرین داشت. هسل فریاد زد گرتل بیا بیا بیا یه دلی از عذا در بیاریم من یه تیکه از نون زنجبیلی پشت بام رو جدا میکنم و میخورم تو هم یه تیکه از پنجره رو بردار به نظر خوشمزه میاد. هنسل رفت و تکه از نون زنجبیلی بام خونه جدا کرد و با اشتهای تموم شروع کرد به گاز زدن. گرتلم در کنار درگاه خونه نشست و شروع به گاز زدن کک کرد که ناگهان از توی خونه صدای اومد که میگفت گاز زدن، گاز زدن، قرچ و قروچ کردن بچه ها با هم جواب دادن صدای باده، فقط صدای باد میاد و باز هم مشغول خوردن بودن که دیدن یه پیرزن عجیب و غریب با عصا جلوه در ظاهر شد هنسل و گرتر از ترسشون شیرینی رو انداختن. پیر زن گفت چه کسی شما رو اینجا ورده بیاین تو مدتی پیش من در امان باشین. پیر زن اونا رو کشون توی خونه و شام مفصلی براشون درست کرد. یکی که شکری و فندوق و سیب هم توی سفره گذاشت. بعد از شام به هر کدومشون تخت با روکش های سفید و تمیز داد که دراز بکشند. پیرزن به ظاهر مهربان بود ولی در واقع جادوگر خبیسی بود که خونش رو با شیرینی درست کرده بود که همه رو به دام بندازه و بهشون غذا بده تا چاق بشن بعدم گوشتشون رو برای خودش غذا بپزه. پیرزن چشاش ضعیف بود ولی بویایی قوی داشت و بوی انسان رو خوب حس میکرد وقتی بچه ها وارد خونه شدن زیر لب با بد جنسی گفت حالا اونا تو چنگ منن و راه فراری هم ندارن صبح که شد پیر زن بالا سر بچه ها رفت و دید بچه ها با چونه گرد صورتی رنگ چقدر خوشگل و زیبا هستن زیر لب گفت چه تومه های لذیذی. بعد با دستای خشنش هنسل رو از تخت خواب بیرون کشید و در قفسه‌ای که در شبکه ای داشت انداخت و درش رو از بیرون قفل کرد. هنسل شروع کرد به جیغ زدن بی بیفایده بود. بعد به طرف گرتل رفت و با عصبانیت بیدارش کرد و گفت بلنش دخترت تنبل برو برام از چاه آب بیار که میخوام برای برادرت یک غذای لذیذ و خوشمزه درست کنم که چاق و چله بشه. گرتل گریه افتاده بود. ولی فایده ای نداشت. پیرزن بهترین غذاها رو برای هنسل درست میکرد ولی به گرتل فقط دست و پای خرچنگ میداد. هر روز صبح پیرزن میرفت پای قفص و از هنسل میخواست که انگوشتش نشونش بده که ببینه چقدر چاق شده و آماده خوردن هست یا نه. و از بین میله های قفص یه تیکه استخون نشونش میداد و پیرزنم که فکر میکرد انگشت هنسله وقتی میدید هنوز استخونی تعجب میکرد که چرا با این همه غذا اون چاق نمیشه بعد از چند هفته که گذشت یه روز پیرزن پادجنس به گرتل گفت برو از چاه آب بیار فردا اونو چه چاق شده باشه و چه لاغر میخورم بیچاره گرتل که مجبور بود آب از چاه بیاره همینطور گریه میکرد و اشک میریخت و میگفت کاش که حیونا ما رو میخوردن راغل با هم میمردم پیرزن صدای گریه گرتل رو میشنید ولی میگفت گریه نکن فایده نداره فردو صبح که گرتل ظرف رو روی آتیش پر از آب کرد پیرزن گفت باید نون بپزیم ولی اول باید تنور داغ باشه بعدم خمیر خوب ورز بیاد در حالی که تنور حسابی شعله بود پیرزن به گرتل گفت که نگاه کن ببین تنور به اندازه کافی گرم شده که خمیرها رو بچسبونیم. اگر گرتل اطاعت میکرد پیرزن بدجنس اونو حل میداد توی آتیش و اونو میپخت. و اما گرتل حد زده بود که پیرزن چه حیلهی براش درست کرده. به خاطر همینم گفت من کچولو هم خم بشم و ته تنور رو ببینم. پیرزن گفت دختر بیعقل. دهانه تنور انقدر گشاده که حتی منم میتونم خم بشم بمونم همون موقع که خم شد و تنور رو ببینه گرتل یه نیروی عجیبی رو توی وجودش حس کرد به طرفی پیرزن رفت و اونو توی تنور هل داد و درشو بست و چفتشم انداخت پیرزن شروع به فریاد زدن کرد که دیگه فایده ای نداشت گرتل پیش خودش گفت این جزای کسیه که بچه معصوم رو توی آتیش می سری به طرف قفس هنسل رفت و اونو آزاد کرد و گفت که جادوگر مرده. اونا هم همدیگر رو از خوشحالی بغل کردن و با خیال راحت رفتن خونه جادوگر و وارسی کردن. داشتن میدیدند که یک هو چشمشون به صندقچه کوهنه از چوب بلوت افتاد. درش رو باز کردن و دیدن، صندوقچه پر از مروارید و جواهرات قیمتیه هنسل جیباش پر کرد گرتلم تمام دامنش رو از جواهرات پر کرد و به سرعت خواستن که از اون جنگل جادو شده دور بشن که یک رودخونه عریض جلوشون ظاهر شد هنسل گفت چیکار کنیم؟ روی رودخونه هیچ پلی نیستش که ازش عبور کنیم گرتل فریاد زد ولی یه قایق اونجاست. البته اون قایق نبود. یه اردک سفید بود که شناکنون داشت به طرفشون میامد. بچه ها از اردک خواستن که بهشون کمک کنه ولی چون دو نفری خیلی سنگین میشدن اول هنسر رو به اون طرف دریاچه برد بعد هم گرتل رو به اون طرف دریاچه توی جنگل برد. وقتی به اونجا رسیدن دیدن که جایی از جنگل بودن که از قبل اونجا رو میشناختن همونطور که به راهشون ادامه دادن چشمشون به کلبه پدرشون افتاد خودشونو با خوشحالی به توی کلبه و آغوش پدرشون انداختن پدر از دوری بچه ها خیلی قصه خورده بود و آزرده شده بود ولی حالا حسابی خوشحال بود دیگه هیچ جای نگرانی نبود میدونین چرا؟ چون فهمیدن که نامادریشون مرده و دیگه نیست که اونا رو عذیت کنه. گرتل و هنسل جواهراتی که برداشته بودن رو روی زمین کلبه ریختن و به پدر نشون دادن و تا پایان عمرشون با همدیگه به خوشی زندگی کردند.